مفهوم معنا کردن و مفهوم با عام یا آیا مفهوم مقدم میشه یا یه دیگر جایی معنا و ابوابی مسئله گفته شد. خلاصه ما این است که بدی چون تفاوت کردند دلالت مفهوم منطوق قوی نیست و ذی یاد نیست. طبیعه فنه هم مقدم میشه از دیگه تصاورت هم به احس چون دلات محکوم فرزن عقلیست مثلا محکوم مقدم میشه این تصورات ارتداری حضیه بود و مسردود جمعه از اقوال شده شدیست من جمعه سلامی از مرحوم های بردجری تغییر فکر شد که خراسته کلام هم این هست که دلالت جمعه چندی یا برسی مفهوم از با به احترازی بودن قیونده یعنی خود کلام به ماهنب و کلام دلالت برمحفوم نمی کنه اون چی که ازش مفهوم استفاده میشه شه فکر متکنمه نه کلام تکنمه همین که قیدی و این قید باید احترازی باشه و بعد هم ایشان تو آخر کلامشون دیدن که اینکه این به تأثیر داره اینجا به بحث نیست اما اینکه خیلی دیگری همون که تأثیر داشته باشه کلام براید براید نمی نمیکن این مفهوم رو به این معنا بشون فرمونه در راسته کلام هم فرمونم که اونجایی که مفهوم داره در آم مقدم میشه ظاهره بشون قالب تبدیل مفهوم بر آم هست و مثالی هم که خودشون زدن همین حالا در ببایات ما هم با ما ببایات مرسلا و نزی علی اللہ و مالفهوران یا اندر من اصلا و مالفهوران لا یقین اجسی روشه لا مغیر لونه و اوتعمه و اوریه که نسبت این با حدیث کرد ازاقل اغلی مواقع در کردن شدید به مفهومه کمتر از کرد باشه متنجس میشه اونجا برمو به این که آب پاکه مگر تحریر لونه ها باشه ایشون فهموندن در اینجا مطموم مقدمه یعنی اگر کار نبود بلا تغییر بو و رنگ و مثلا خبصات آب نشد باز هم نجسی میشه چون کار نیست احتیاج به تغییر داره. این خلاصه کلامیه که ایشون فرمودن ما در وقتی دیگر شده کنید از که این مطلبی که ایشون فرمودن که اولا این مسائل رو ارجاع بدن به فعل متکلم خب این ارتدار کشکال مدنگی داره سابقاً هم توضیح داده شد و الان به مقالص لفظیه ایشون ظاهره حتی حساطل حقیق و حساطل ها همه رو از نه حقیق میدونن از فعل متکلم خب این عرفیت نداره نصافه و اینکه ایشون ادعا فرنن کلام قدما هم, هم همینه نه این طور و کلام قدما ما در این بحثات دیگه وارد این بحث نمیشه اما این که ایشون فرمولن که این قید ظاهرش احترازیته ولا که این قید دیگر اینجای بیاده خلاه یعنی ساکته خب متاسفهانه محکوم همینه این در حیلت ایشون منکر محکومن در حیلت مراقل جدی منکر محکومن نه که مصرف مفهوم. همچه که محکوم داره دو مدناسی یکی این که اون مذکور تاثیر داره و خفت برای مطلع میزید یه درجه از مفهومه. یکی این که نفیه ما سوا. یعنی جانب سلبی و حقیقت بحث مفهوم این دو همیه. بحث بخص اینه این انجاهه که زیدان فکر مهم به این معناه که آمدن زید تأثیر در اکرامون داره اکرام این مقدار که جنبه ایجابی گرفت این تقریبا متفقون علی که متفقون علی العرب سما این رو میشه قبول کرد مشکل اینه که مفاد این کلام این باشه که غیر از آملا چیز دیگه نمیشه جوون بگیره این مشکلاله این اینکه چون ابو لنع تقریبا مفهوم قبول نداشتن ترجمه کردن از مقام ام میشه اون اساس اثر احضاری در قیود این متفقون علی تقریبا داره یک معنی اما این بحث مفهوم چیز دیگریه و اون جالب سلبیه چون مترسخانه ایشون قبول ندارن پس در حریفت ایشون قبول ندارن اصلا نباید این بحث مفرح بکنه ناید ایشون تأثیر داره اما چیز دیگه تأثیر داره نداره ساتفه خوبیه مفهوم نداره اصلا تمام مفهوم اینه که خیلی تأثیر داره و در صورت ندیش دیگه این تمام مفهوم اینه نه دیگه ایشون میگه مهمون چیزی دیگه میگیره گیره که او قیدون آخر مفهوم یه دردازه هست که این مرموهای در وقت خواهل به مفهوم به این معنا شده شبیه شخص و حکمون سنخ و متعرض شدیم اصلا ارتفاع شخص و جه بس میسی میاد فرمون وقتی که الان محل هر کلامه رو وقتی گفت اکرم زیدان انسان خارجی و خوش‌خو این خوشحال هستی که جای بحث آورده اما اینکه خیلی این خصه فک نداره این مفهومه این مفهوم نداره معلوم نیست ایشون قوی نمی‌کنه پس اون چی که ایشون در آخر کلامشون گفت در اصل کلام یه مالام المفهوم و, و علا، علا بر مطلق یعنی تعریف شما مطلق پس بنابراین اصلا ایشون در حقیقت قال محکوم نیستن ولی کسی که قال محکوم نباشت این بحث بشه اون معنی نظره جا این بحث نیست این سانیه سال سانیه محصولی عددش بایه خود و اصولا اون مثالی که ایشون زده ها. اون مثال خب تقریبا مصطقان علیه بین از خواب ما حتی بین ها در مورد خودشون چون اون مثال نسبتش با آن و خصوص مطلقه اونجا میکنه. بحث رو اون نیست دقت رو کنیم خب خلر جلالا و خب ما ما بعد آمد گفت این آبی که رو باید کرباش دون و کرب نیست خب این دوه بحث نیست جای بحث اینه دقت رو کنی. مثلا گفت اینجا جایش زیدون فعکره خب محکوم میشه که اگر نیامد اکرام نه از اونم گفت حکره ولو حالا زیدم از علماء خونه ما ن این مورد این ساله مفهوم اکرام نداره اینجا جاک زیدان تا اکرامو طبق مفهوم طبق اکرام علما اکرام داره این همون بحثیسی که یخلق و قیدون آخر این بحث همینه ظاهر عبارت مجیع تأثیر داره ظاهر عبارت ظاهر آن عالم بودن هم تأثیر داره یعنی مجیع تأثیر در وجوب اکرام داره بس این از که آلم بودنشم تاثیر داره پس اگر زیر خونه من نیامده اما عالم بود تبقه عکمل علماء اکرانوشو خودی یا تبقه و زیر دارو آلمه چون خونه من نیامده پس اکرانوش نکنی تو کتف یا مثال, من مثال منحصره به این که نیم مثلا اگر گفت عکمل علماء تو زیر دارو از او گفت که این زارت زیدون فلا توهین فساق الالم. مثلا این که نصدهش هم خواست مطلب زیدون حالا اگر زید دیدن من نیامرم معناش نیست که این فساق العلمان فساق علمان را از او برم دیگه هستم علمان یه علمان اکرام بکن از این برم یه فساق علمان نکن احانه دو آیا تخصیص قائل بشینی اگر زید می آمد احانت حالا زید نیامده چی؟ این حقصو مطلعه. اون حقصو منبرش هم میشه تصویر کن. مثل انجاک زیدون فلاتو هنل فسا ده. قدر کنیم. این نسبتش با اکنال علمان. محل کلام زید دیدن من نیامند. محل کلام. عالم هم هست. نه یک عالمی هست فاسره محل کلام زید زیدن من نکنم حالا یک عالم فاسره طبق اکتمال علما اکرامش واجب ده طبق مفهوم احن الفصابون گرده انجاعت زیدون فلاس و هن الفصاب اگر زید آمد احانه یا مثلا میگه اگر زیر وارد این شهر شد به فساه این شهر کار نرسوش مثلا زیدم با اون رو جز فساه رو ازگرد این فلاترین فساه نسبتش با اکین العلمان مهم کلام اینجاست اگر او خصوص مصرح باشه تقیید بزنه اگر او خصوص ملوش میشه تعارض بکنه این محل کلامه نه اینه لاجع علی ما فغور رو <laughs> لایونجس و مهند کرا در اون بورد که آید مثال نزده در اونجا اینه چون ظاهر ادا کانم بلغ ما قدر کرداری نزدی سوشه خود کردیت آتمیت میاد حالا از اون داره ما قدره باست آن داری نزدی سوشه تا عارض این کجا است چایی که کمتر از کرده گویه هست آبه چایی که کمتر از کرده. طبق اداره بلن ما قدره کو این نجس میشه این کمتر از کن ما اون به ارواس اون لایون نجس میشه واس اون داره هم مراد احتسام باشه یعنی خودش فراوانه لایون نجس هم خکمی روشنه تو برسه لایون طبق این یکی این مونسن میشه مونسن میشه مردم این دوتا با هم اختلاف برند اون وقت جعل الله ماه تهورن اون اختزام می کنه باشه پس طبق ماه الویر واسه اون باید پاک باشه طبق جعلال ماه الویر واسه باشه بلقل ماه قدر کرغن لایین از جسوشه باید نجسوشه اینجا محل کلام وقت تصالتان آه بودید و سخته اوازه یا قدم مال اگر مال مخموم مقدم باشه باید بگیم آب ویر تا کمتر از چار. پس کم پر کور نگست اگه اینطور باشه <تصفيق> بکنه خب این رو انتظار ایتظام در آخری کلامم هم پردن یوم کیه که یه قید دیگر جا خب این سؤال همینه تمام درس همینه یعنی کریت سر را از سر ای اتصام ماه بیر بودن هم سر را زای اتصام <تصفيق> اون یکی هم یکی پس اگر آ به انقلاب خورد بود یا آب آب چاه بود لای تنجهس؟ نگات دارید پس بنابر این بحث تعارض مفهوم با منطق اون مثال نیستیشون ایشون زدن و اصولا از زوائد اباظی چون اصلا قابل مفهوم نیستن چون جناب سردو قابل نیستن پس این کلام که ما فعلا به ها مراجعه بیشترشون شد مساله این وجه به کلمات مرحوم حضرت های برزیزی قدسال الله نسلی که همه همه جازیشون داریم و اما یک مسئلی هم مخاطر حرف آهای ناینه رو بکنیم چون دیدیم که یه مقدار از مسئله لا خوی خونده شد ما اشتباه کردیم وید ما تکیمی میکردیم بحثی مبایی دیگه. حالا از این بحث رو برگردیم در نوشتن بوان بحث سابه آهای خویی قدسال لا حسر من مطلب میشونم توضیح دادم و تمام کلامیشان تمام نکرم حالا من کلامیشان نه بودم با خصوصیتش رو نه من ما رو خوبی بعد از این که اینکه ایداز رو مبنای اجمالی نه بعد مبنای کفایی و مرگونه هایی رو نه بودم مبنای خودش رو متعدد شد اون یک مقداری شهر بدن رو شده اولا ایشون فرموزن که ما اگر مفهوم قاعد شدیم این صور ایدار تارتن نسبت به این مفهوم اولا یه نکته اساسی قبل از میبارد بحث بشن من هست همیشه در هر بحث علمی اون زاویه و نکته فنی بحث رو ده قبل بکنم اون همه مهمتی از اون زاویه بحث این بحث چون مفهوم دلالتش از اف و دلالتش به قول آنوزه بود بعد حال مفهوم محل خلاف بود دیگه مثل من تو قلیب هر بحث مفهوم از این زاویه است خصوصا و معلوم معلومه که تو دقیقاً داشتم می‌شینم اونم خصوصاً در واجبات و مثلا نخر همون بحثی که در باب تعارضه چرا بحث مفهوم رو مطرح کردن اصولا اون زاویه بحثش اینه چون گفتن این دلالت مثل دلالت منطوق نیست اگه مثل دلالت منطوق کار راحت بود این مثل دلالت نیست نکتهش این اینه دیگه اون نکته بحث اینه من از همین زاویه وارد بحث می‌شیم یعنی نقطه اساسی آرخوی اینه و اون نقطه اساسی اینست که اصولاً همچنان که مفهوم با آم تا داره اگه دقت رو کنید منطوق هم داره یعنی این زاویه رو دقیق کرده وارد شده شما مخاییم زاویه بست از اینجا بیدینید که مفهوم با منطوق دلالت شرف میکنه کنه منطوق اگه باشه با آم در میفته رو کارهایی که داره محکوم چون زعیه سر ممکن است بگیم درمه یخفته این زایر بعد. میشه این نه این تارست منظوم هم هست این تارست محکوم نیست مثلا اگه گفت اکمل قلمان بوده بهم نسال دیگه قدرد از مسالات موزیه دیدیم خیلی از اون برگوه این جایه که دیگران ترکیم ها از قلم است. خب شونجه تقیید بخواد اگر اگه بخواییم میخواد دیگه زیبایی که از علمات اگر نیامد اکرامش نکن خاطر مفهوم اگر نیامد اکرامش نکن دیگه خاطر مفهوم ولو عالمه بخاطر مخاطب اگه این لمیه این که از الان تو کن خب دیشون محای امتن در حتی با این جای که زیده رو تا عوض داره فهم عامل با منطق هم داره چرا؟ چون این علمان اکرام بکن زيدان دیگه خلا. گفت این یا که عبارت حال شبیه عبارت روزی بخند یعنی. اگه بله به قول آل وقت کو فر یعنی هیچ حیثیتی در اسلام دخالت نداره. حیثیت دیگه دخالت اثر علم. وقتی گفت این جهات زیدون یعنی مرجع هم حیثیت داره. اگر داخل علم علما عالم بودن کافیه هیچ حیثیت دیگه نمیخواد حیثیت عالم بودن کافیه اما وقتی که این جاعه زندگی در از علما معنی میشه حیثیت مجیع هم موثره خب اوقات قلنا خب بالعلماء فكر بالو میخواد بس یک زان حیثیت لعالم تکی اون یک زان حیثیت عالم باشه لو بدنم معنیه و شهید لذا نوکته دانش ذکا این چون این چه داره این چون بحث ها مفهومش پیدا این حساب رو مردمای خوبی باز کردن از روزی اگر سلام هست گفت حساس او از این زاویه یعنی این آیین اصولی ها خوب ظرافت من همیشه ارزمون نکته فنی اذن رو مسئله علمی رو اون نکته فنی فقط این نیست که اگر درسته اون الان محل کلامه اما وقتی خوب دقت بکنید اون اکرم العلماء خوب دقت بکنید با این جا حک زیدون فاکرمو اینم تغیر میزنه چرا چون میگه حیثیت عالم کافیه این میگه نه حیثیت مجی هم میخواد خوب خب، اگر آمد همین به سرایت مفهوم میکنه پس مفهوم هم میکنه. تو اگر این آمد همچنان که در ناهی من تو محدود میکنه تو ناهی مفهوم هم محبوب میکنه. یعنی اکرام علما واجب خصوص ذی که از علماست اگر نیامد نه مفهوم مقدم همین تمام تمامی مقدماتی گفت که شما خودتون به استکاذ بره ایشون خوب نگاه البته به ایشان نداره اذه از خصوص این زاویه بحث ایشون این, این مفهوم تنها در نظر بگیریم بگیم حال دلالت مفهوم اجزه این چیکار بکنه با آم پس زاویه بحث و ورود بحث روشن شد ایشون تو منطوق میذاره شما اگه خود منطوق هم همین طور مفهوم نداره ها ها. حالا من این, بر این اینه زیاد دارم تاکید میکنم که من یه از پشتونه که استاد میخواد میخوام وارد بナ میخوام نه بار میشه یا نمیشه کم برد برد. پس این مفهوم این منطوق آمد یک کیفیت جدیدی رو بود. نه حیثیت عالم بودن به اول حیثیت آلم بودن بود اکشمال قلمان حیثیت عالم انجا جاعت زیدون پس یکی حیثیت اضافه شد رو چند شد این حیثیت تو منطوق آمد دیگه تو مفهوم که نبود اگر این حیثیت تو منطوق آمد و تأثیر کرد در آن ایشون بهاید خاصش خواستش مفهوم کار میکنه. پس اول از این بحث آیه خوبی خیلی درکی که ایشون در خلال بحثه که با مرمون نایی میکرد اینجا خودشون که در خودشونه ارجاع به بحث نه بحث خیلی دو ساکه قلبش یه در منابوش که مرمون نایی میکرد با کسان که اصلا دلات محکوم هست ایشون میگه نه این دلات به بحث تنها ها برمیگرد به منطق هم برمیگ اینجا جو مانطوب دروغ با استدلال اکثر نه با اون دوشه فهمون کنن. حالا اینا فهم می‌دونم ولادو زیب و مزه و تازه مطلقا مراجعه. به هر حال این یک یک مطلب که شما در نظر دیگه مطلب دوم اگر مکن ثابت شد، باید نسخه‌ش رو با خام بررسی کنید. نه اینکه دارم می‌گم که دا آرزو مثل اینجا خودش نه چطور جشن اون نسبتی که ایشون بررسی میکنه گاهی نسبتش با آم حکومت هر جد من جوقم باشه نسبتش با آم حکومت باشه مغزم فرمان میکنید در اینجایت فرقی ندارید مثلا ایشون مثال میزنه آیه مبارکه رو بردم چهر میزن چون در بحث خبر, خبر بارد این بحث هست آن مراجعه کنید یه خودشون ای کمی تفسیح دادنشون اینجا ها کن فاسمون به نبعین اگر مفهوم داشته باشه محکومش این که خبر آزل رو قبول کنه تباییو نه خبر آزل فرسن خب بعد علت داره همتوسی و قومن به جهال هستن که تس بقا الان ما فعلتم نادمی ایشون شکل می که آیه نبه صدرش نسبت به زیلش تعلیم باشه نسبت شون حکومت چون وقتی که آمد گفت اینجا ها کن فاسقا به نظر این و این دنبال بیان بیفتید. حس. منظور میشه که اگر عادل اول بیان دیگه تبیین نکنید، این چی؟ دیگه دنبال بیان نمیافتید. یعنی چی؟ یعنی خبر عادل خودش وقتی گفت انجا هتون فاسقون بنواید، نگفت تبیینوا. اگر فاسق افتاد او دنبال بیان میافتید. اگر فاسق نبود عادل بود دیگه دنبال بیان نمیافتید. معنای که دنباله برم نرخی در این چی؟ یعنی خبر آدل بیانه اگر بنا خبر آدل بشه بیان وقت انتصیب و قومن به جالتی جالت نیست. اگر مخصوم ثابت بشه برای آیه من در بحث از قبل از که خیلی طولانی سن میشیه در صحبت کرد ما همه ملخصه این در دو کلمه خود ما خیلی خطه نکنید وندو سیاه سیاق آیه چیه اینا شما فکر بکنه سیاه سیاق آیه تقسیم ندای خبر سیاه سیاق آیه این باشه خب مفهوم داره شما فکر دیگه خبر خبره دو جویه خبری که فاصل میاره تبیین میخواد خب هم دو قسمه که خبری به عادل میگه تبیین اگه سیاق آیه تقسیم خبر این مفهوم داره خبر عادل وجد اگر سیاق آیه بیان حال فاسره که انسان فاسره یکی از آثار آس... مثلا یکی از آثارش بلا تنبال نام شاهدن فاسر شاهده خبه نیست یکی از آثار فاسره اینه که در خبر عادیش هم باید تبعیم باشه این دیگه مفهوم نداره این شد در اقواله تو فاسر. <تصفيق> مفهوم نده. این دو سه کلمه کل این بخص طولانی که دیدیم ملخص به دو کلمه شما همیشه این مشکل نداره سیاه آیه و شن آن زولا آیه ناظر به تقسیم خبره یا ناظر به حال فسره اگر ناظر به حال فسره باشه مفهوم دارد اگر ناظر به تقسیم خبر باشه مفهوم لعشو وقت داده می‌خویی ناظر خودی نه کیه سپس تقسیم نه سی ناظر به حال فسره و دو مفهوم داری <تصفح> و رسید الى که پای اومده ان نبع امکان جایی فاصلا ساز که پای اینو معنا کرده این معنای نیست که ساز که سازبر این معنا رو اثبات بکنه چون ان نبع امکان الجایبی فاصل درختی به نظر اون باعث طولانی آیه نل افتش و بعد بشه تا به دو کلمه براتون مختصر گفتیم که روشن بشه به ذهن خود بندم عرض حال فاصله حالا اگر آیه نبر مخمون داشت اون تقریبی که حس کردیم اگر آیه نبر مخمون داشت آرز توی می فرمان نصفتش با اون عموم علت از عموم عمومی سنم مطلقه نصفتش نصفت حکومت اصلا تا آرز نداره چرا؟ چون آیه می خبر عادل بیانه؟ بعد از فرن توسیب و من به جهالت جهالت در مقابل بگم به جهالت پس در خبر آده شما فحصه می چون جهالت نیست این ولذا تقدیم محکوم بر اطلاق آیه یا عموم زیگ و تعلیق و ایشان از باب حکومت اینجای بحث من ره اما اگر حکومت نبود بیشون مثال بیزنگاه اون خصوص منوش که اون خصوص مطلق اون خصوص منوش این مثالی که حرف کردم انجاج زیدون فلاتو هنلف و اگر زید آمد از اون برم گفته اکشنل علمان درست شد؟ زید نیامد یک عالم فاسقی هم هست زید نیامد آمدید هم یک عالم فاسقی هم هست اکشنل علمان یه اکتامش بکن اینجا چون مفهوم داره چون زید نیامد آمد احن الفصا باید احانت شد اینجا چی پا رو بکنیم مقدم داریم مفهوم یه پیشاوامو خصوص مطلبه اما مثال كور که آیه بوجري هم مثال بزنم جلاله الله تبارك و سویشه، نجس ما از ما فرضا بلاقل ما قادر کره لا نجس خب اگه کمتر از كور بود بدون حادثه به تغییر لون و طعمی ها نجس میشد اینم مثال خداو روز مطلق واصه مثل انجار که زیدون تکریم اگر اگه زید اول اکرام ن더라 نرمو به اكمل العلماء بگی این مقدمه چون نسخه خصوص مطلقه پس یا،, یا حکومت یا حکومت انرژی یا مخصوص صفر. حکومت که هنوز واضح شد اون حکومت توی اون حکومت منبع ایشان یک قاعده رو ما قاعده رو توضیح اون توضیح داده بینجا جو. ایشون بین دو تا عام بین حکومت انرژی باشه، مثلا به مقدم میکن به مثلا مثال بزنم از اونجا دلیل داریم که بول و راس مالایو رو که لحم و این نشسته از اون برم داریم که کلوشه این یکی فلا برسه به بولی و روسه باید دوستا شما خصوی منوش دیگه چون ممکن است هیر خرانگوش باشه مثل اقاو این آیا اگر تبقیه یکی بولش پاکه تبقیه یکی نشست ممکن است به اصطلاح تب باشه و هلا گوش باشه مثل کبوته فوق پاکه ممکن است که هر آنگوش باش نباشه نسفرسوند. سگ و خوب این پس آی آقای خوی فرمیدن اما تا این زیاد گفتن نه مناقشه کردن چون توش باید در من نمون آی خوی می یه نقطه ای دارید. این نقطه فهم و است. این نقطه رو ما در جه تو دیگه اند احساس دادید اون نقطه فهم قلایی این است که اگر دو دلیل باشه یکی رو مقدم کردیم برای دیگری موضوع بمونه اما یکی دیگر مقدم ببینی برایش موضوع نمونه برای دیگه. ما دو دلیل داریم هرنده که اولش پاک هر آنگوش اگر ما در مورد آقا گفتیم که اون دلیل خیوه مرکول حکم کردیم که این بایدن بولش نجد در آقا که ه در شاون و کرکسین ها حکم میکردیم گوشت نجسه خب چه شده اون اطلاق اون وقت بگیم پرنده با اون پرنده دیگه نکته نداره میگه پرنده با گوشتش نجسه پرنده مثل چنده میشه اگر اون گوشت پاک هواوی بود نجسه دیگه نکته نداره پس اگر حرام رو مقدم کردیم عنوان پرنده لغو میشه خود دقت بکنیم اثر نداره عنوان کردن اما يا اون دگه پرنده رو نه پرنده به خصوص خارج و رو حرام باشه با ویسپارد هر عمل کرده اون دلیل میگه حرام نج... گوش نجسه مثل خرنده و حیوانات وحشی رو قضا این یکی میگه که پوسه پرنده بود این یک نکته فنی است که در تو کمی این نکته فنی که هیچ‌وقت ما ملاحظه دولسان در نمی گاهی اینجوریه که اگر یکی رو مقدم کردیم دیگری لغو میشه اما اگه اثث شدند دیگری لرد نمیشه، برناشون به اینه که اون رو انجام بدهیم مثلا در اینجا گفتم آهو که مسلمه هر آگوش نجسته، ولو پرند رو. اون باز کل لوژینگتی لخونش شد. چه فاجعه داده؟ پرندان گفتمش یکی میشه. هر آگوشش از پاکن هر آگوشش نجسته. چه فرق؟ مثلا چوچی نجست میشه، هر آگوشش پاک میشه. یک پرندی در این گاز هر چقدر هم اما اگه ترندر مقدمه کردن فرمودن لازمه ایشون میفرمونه اگه نثارم خصوصی من رد شود این نکته رو مراعات میکنه حالا اینجا با استاد من مطلب مقدمه اول رو که اون منظورم بود بخوا اینجا بحث بکنید سوال اینه علی که اینجا استاد ارجاع دادن به باب تعارض وقتی این سوال اینه الی من خودم میگم وقت بذار تمام بشه سؤالی که الان محور در حقیقت اینجا اینه بوده قطعه این تو نقطه سوال روشن بشه ما یک مثل رو دیگر من بگم برداره این سوال نقطه سوال بشه یه بحثی از خودمهای ما داریم مثل مرمون صدوح هم داره در بحث ما ها اون بحثی نگاهی تا آرز بین دو سو دلیل واقع میشه یه دلیل حکم داره یه دلیل حکم علت داره یه دلیل حکم داره یه دلیل حکم و علت داره یعنی معلل اون حکمه ادهی از علمای مصدور هم برزیباتیشان بر مصدور قدس الله نست داره نمعتقدم که معلل مقدمه آنسان شما الان در ترجیح ها همچی ترجیح الان به کار نیدورید این در ذهن ادهی بوده که اگر دو روایت بود یه روایت حکم رو گفت یه روایت رو همون حکم رو معارض اون ضد اون رو گفت و علت هم رو الان تو نظرم رو فهم میکنم باید تو روایت هم با هم باید اونو میگن نه اگر معلل شد مقدم معلل شد چرا؟ چه پتر چون اگر معلل نشود، روایت فقط حکم عورده اما اگر معلل شد دو بار عورده همه حکم عورده هم علم که انما دو بار عورده مثل اکرم العالم لعنهو عالمون با لا سکم الفاسد اگر با اکتم نه لعنه با عالمه و لا سکم الفاسد اگر عالم فاسقی بود اکتم مقدم چرا چون تو احتمال عالم دو منطبه آمد هم حکم مالا تعلیل با تعلیل بار دورو میکرده آمد اما در حکمی که تنها بود یک بار آمده یک تصوری که خود تأکیب و تکرار، این یکی از مارکی هاسته ما الان این رو قبول نداریم و در حصول فعیلی ما این مطلب گفته نشده اما این هست این یک نکته در بین فرانتیز بعد برگریم و مطلب <تصفيق> ببینید آقای خویی که اگر در لسان دلیل خب اون نقطه فرمی رو ما هم درد بخونه اگر در لسان دلیل یک نکته آمد که موجب به تقریم شد مثل همین نکته. این نکته لازم، کلش اینیه که این نکته موجب تقدیم میشه چرا؟ چون اگر زیل حرام بشه، این زیل لحوم میشه این این نکته رو ایشون میفهمند در مفهوم هم همینطوره هر وقت مفهوم یه نسبتش با اون آمده دیگه داره این بود، اونی که داره این نکته هست میگردن اگر داره این نبود، تو وقت یه تارو دو، وقتی اون کسوم میذاره که ولی شواهر سندی، صدوری، جرد صدوری اله آخر اون, داره. اون ای که داره اون رو باید ما را آت بکنم هستان موضوع باستان اون نقطهی که از آن کلامه اگه خود دقیق رو کنیم ما ممکن است این ببینیم اون کسانی که, که مفهوم رو مقدم داشتن از همین زاویه‌ای که همی که درافت داره خود دقیق از همین زاویه‌ای که مرموم های خویی وارد شدن که در حقیقت و در منطوق هم تأثیر رو آن داره این طور که تمام تاثیر مال مفهوم باشه یعنی وقتی گفت که اکل العلماء بعضی گفت اینجا که زیدون تاثیر مجی تاثیر داره عالم بودن تاثیر نداره اگه دقت مجی تاثیر داره عالم بودن تاثیر نداره بگیم روی این نکته هر جا که ما مفهوم داریم خوب دقت کنیم، هر جا که ما مفهوم داریم این از قبیل کل و شبیهیاتی ایراد به تعریف ما خود خوبی زیرا خاطر دکتر گرسید هر جا که ما مفهوم داریم ولی ایشون میگه باید نسبت در نه نسبت نه موقع ملاحظه یه قاعده بذاریم هر جا مفهوم داشتین این از قبیل کل و شبیهیاتی ایراد از قبیل حکم معلل به قدون آقای ببینید چرا؟ چون لحظی آمد با انجاعت زیدون یعنی این مجیع زید علم تنها موثر نیست این در منطوقی که در مفهوم نیست چون مفهوم هم انعکاس منطوقه تأثیر متقابل با منطوقه پس یه هم این همین نکته توی مفهوم هم مراحب میشه در پتیجه اگر زیب نامد و رو آلم باشه تخصیص نیزن اکرام نداره زاویه بست چی شد؟ یعنی زاویه بست آر خویی اگر تقدیر کلوش اینیتی باشه با هرانگوش مثلا بردس نیسته اینجا کلوش اینیتی رو مقدم بکنیم بگیم آقا اینطور نیست که ایشون بگوزن هر جا که از این قدیشون باشه نه اصلا بگیم هر جا که مخبوم آم چون در ذهن منطوع میاد تقیید میاره پس معلوم میشه ایک خصوصیت رو لحاظ کرده شاید هم مراد آل برو همین بود یا قدمان آل مرخوب عدال آم حتی در اون مثال اگر گفت انجا اک او اون دقیقی فلا توهن الفصا اگر این سا بود انجا اک زیدون تعمل کنیم فلا توهن از اون من گفت اکمل علماء زید هم نیامد خب باید خوصاق آخانت میکنیم؟ یکی از خوصاق عالمه یکی از خوصاق عالمه دلیل اکلمال علماء مقدمه یا محکوم مقدمه اهل خوصاق نقطه روشنجو؟ کده میگه مقدمه؟ بگیم این اهل خوصاق مقدمه بگیم اینجا علاوه بر اینکه مخصوص الملکیه چرا از این که در امر بود حیثیت عموم دیگه در نظر نگرفت کواترمل الاول درف در صار حیثیت مجیع دیو در نظر گرفت گویا نگفت اهل الفصا گاهی میگه اهل الفصا این با اکرمال و خود بگیم بگیم این خود رو ننبرده بیاییم بگیم بیاییم بگیم همین که این حکم رو اوورد روی مهی ازید هر روی پس این از قبیل کل دو و بهران روشت از این قبیل شد آهاری سیدی پرمود از بعضی وقتا نسبت مفهوم با اون آم از این قبیله ما بیایم چی بگیم بگیم سیدنا همیشه از این قبیله ننه تو رو نگاه کن اینا پست‌ها همیشه از این قبیله چرا چون هوک رو اهانت قصاب مطلقاً نبرد اگر میگه اهل القصا میگه اهل علماء بله اون قصون رو دیگه با چطور می‌گوی اون بگرد اهل رو مغیبت کرد به حیثیت مجید زید پس احین خصوصیت داره اون... اونطور مثل اقدم العلمانی احین الفصا خصوصیت داره اون خصوصیتش چیه؟ این دعه در مجیعه از قبیل کل شعیلیتی چطور کلو شعیلیتی خصوصیت داره؟ بگیم آید میتونه اگر مقصوم خصوصیت داشت مقدم برد آم میشه. بگیم نه اصلا هر جا که محکوم آمد منطوق آمد جمله شرطی آمد هر جا جمله شرطی آمد ارتقاض و عرفی اینه اینجا احین الفصاق مطلق نیست احین الفصاق محدوده یعنی اگر زید نیامد احین الفصاقی که زید نیامد این خصوصیت اختضام میکنه برای حکم العلمان مقدم میشه ولی اون فاسب آلم باشه پس در اکمل علما خصوصیتی رو در نظر نگرفته در اهل الفسا خصوصیت در این شد نسبتش از ثبیل کل شگلیاتی با نسبت بول حرام گوش شده تخمی بحث شده من این زمینه رو فعلا روشن تکمیل تا ا اتقاضاش رو که آیا وجود منطوق همیشه این تاثیر رو داره یا نه و رضا وجود منطق همیشه سرار دشه که مفهوم برای آن مقدر بشه نسبت اون قطعه منوز نه اون قطعه مطلعه.